نام خداوند جای و خداوند نام این چارمین روایت من از شاهنامه است شاهنامه این برترین اثر حکیمانه خردمندانه عدیبانه و معنوی و حماسی جهان بشری با کدام این کلمات خداوند را سپاس گویم که تدارک این این روایت را امکان پذیر ساخت ای همه ایرانیان و این حماسه دوش فرادهیم از این چشمه همیشه جوشان خرد و اندیشه و ایمان و عشق بنوشید و بنوشانید هموطن شما سعید قائم مقامی که روایت کردن نخستین پادشاه ایرانی که او بود و پس از او هوشنگ با تحمورس و جمشی بر جمشید بر تخت نشستند. جمشید بر خداوند شوری و فرحی زدی از او دور شد و زهاک او را کشت و هزار سال بر ایران زمین جاورانه فرمانروایی کرد فریدون از تبار شاهان در روزگار زهاک می شد زحاک پدر فریدون را میکشد. مادرش فرانک او را از زهاک پنهان میسازد. سازد. فریدون می بالد و بزرگ میشود و گریختی از پنجه بیداد زحاک به یاری کاوه آهنگر بزرگ زحاک را از تخت پادشاهی ایران به زیر می کرد و 500 سال دوران پادشاهیش آغاز می شود. در روایت سوم برایتان گفتم خداوند به فریدون از دختران جمشید سپسر می دهد. سلم و تور از شهر ناز و ایرج کوچکترین آنها از ارنباز. اخترشناسان آینده سپسر را تباه و سیاه و خونریز می بینند. و فریدون برای پرخیز از چنین آیندهی در زمان حیاتش قلم وسیع پادشاخیش را بین سپسر بخش می روم و خاور را به سلم، ترکستان و چین را به تور و پادشاهی ایران شهر سرزمین اصلی ایران را به ایرج می دهند. سلم و تور این تقسیم را بیداد می و آمادی نبرد با فریدون و ایرج اردوگاه مشترکی در مرز قلمرو پادشاهیشان برپا می کند. فریدون از ایرج می خواهد آمادی نبرد با برادران بدنهاد خود شود اما ایرج مهربان است و آشتی با برادران را بر پادشاهی ایران زمین ترجیح می‌دهد. پس با چند به اردوگاه برادران بزرگتر میرود او به آنها میگوید از پادشاهی و تاج و تخت ایران زمین گذشته است اما دو برادر خونریز در مییابند تا ایرج زنده است همیشه تخت پادشاهی آنان لرزان خواهد ماند چرا که هم خود و هم سپاهیانشان و همیه ملتهای ساکن سرزمین های بزرگ امپراتوری ایران ایرج را سزاوارتر و شایسته و برازنده تر برای پادشاهی سراسر ایران بزرگ می داند. پس تور بی شرمانه با خنجر پهلوی ایرج را می و سال سر بریده او را در تابوت زر برای پدر پیرشان فریدون می فرستن. ایران زمین یک سر در ماتم و سوگواری می شود فریدون شب و روز در کنار تابوت زرین ایرج ناکام آنقدر اشک می ریزد که چشمهایش بینایی خود را از دست می ده. فریدون از خداوند خواسته است به او آنقدر زمان و عمر دهد تا بازماندهای از ایرج انتقام خون او را از سلم و تور باز ستاند فریدون سپاهیان و سرداران و مردم ایران در سوگ و انتظار سالیانی را پشت سر برامد برآمد براین نیز یک چند کار شبستان ایرج نگه كردا ریدون شبستان یکایک بگشت بران ماه ماهرویان همه برگذشت یکی خوب چهره پرستنده دید کجا نام او بود ماه فرید که ایرج بر او مهر بسیار داشت غذا را کنیزک از او بار داشت پریچه را بچه بود در نهان از آن شاد شد شهریار جهان از آن خوب رخ شد دلش پر امید به کین پسر داد دل را نوید ماهافرید یکی از پرستنده ها یا کنیزک های ایرج از او جنینی در شکم دارد. تریدون شادمان و امیدوار انتظار تولد پسری را میکشد اما تقدیر چنین است که ماهافرید دختری میزاید تا گویی ایرج است که در قالب نوزاد دختر بار دیگر قدم به پهنه زندگی گذاشته است. تریدون خدای را سپاس میگوید. و به پرستاری دختر نوزاد دل می‌بندد. دختر می و بزرگ می شود اینک زمان آن است که برای او شوهری جستجو کند چه کس در از پشنگ دلاوری بزرگ پسر برادرش گوی دلاوری که در رکهایش خون جمشید شاه را دارد بدین ترتیب پسر برادرش پشنگ با دختر پسرش ایرج. ای باند سراشویی و حاصل این ازدواج و پیوند نوزاد پسریست خوب چهره و آنچنان شبیه به ایرج که گویی خداوند ایرجش را به دو بازگردانده است اما فریدون در سوگ ایرج آنقدر گریسته است که چشمانش را توان دیدن چهره نوزاد نیست گرفتان گران مایه را در کنار نیایش همی کرد بر گار که ای کاشگی دیده بودی مرا که از دان روخ او نمودی مرا بدیدم یکی چهر این شازا مگر گشت این دل یکی بار شاد زبست که از جان آفرین کرد یاد ببخشود و دیده به دو باز داد فریدون چو روشن جهان را بدید به چهر در ثبوت همین گفت که روز فرخنده باد دل بطسگالا نما کنده باد می روشن آورد و پرمای جام مناچه را شد منوچه نام نوزاد را نام منوچه نوزادی که همه امید و آرزوها و همه خشم و خروش فریدون و ایرانیان را در وجود خویش به همراه داشت فریدون شادمانه شب و روز و آموزش و پرورش منوچهر پرداخت منوچهر بزرگ و بزرگتر میشد و فریدون در تربیت و آمادگی او همه هستی خود را نثارش میکرد <تصفيق> ناحاک بود پادشاه را به کار بیاموختش نامبر بر شهریار چو چشم و دل پادشاه باز شد سپاه نیست باوی هما باز شد نیا تخت زرین و گرز گران به دوداد و پیروز تاج سران اینک انتظار به پایان رسیده است اینک زمانان آن فرا رسیده است که تاج و تخت پادشاهی ایران به منو ته داده شود اینک حیات دوباره به پیکر ماتمزده ایران و ایرانی بازگشته است فریدون در تدارک جشن تاجگزاری منوچه و آمادگی سپاه ایران و است که از این پس در کنار منوچه شمشیر خواهند زد همه پهلوانان لشگرش را همه نامداران کشور را بفرمود تا پیش او آمدند همه با بادلی جو آمدند به شاخی بر او آفرین خواندند زبرجد به تاجش برفشاندند به جشنی نوعین و روز بزرگ شده در جهان نیش انباز گرگ برآمد ز درگاه آواز کوز زمین نیلگون شد هوا آب روز سپهدار چون قارن گافکان سپهکش چو شیرو و چون آفگان گرشاسب گردن و شد زن، چو سام نریمان یل انجامن قبادو چو کشباد زرین کلا بسی نامداران گیتی پنا چو شد ساخت کار لشگر همه برامر سر شهری ها از رمه سپاخیان و سرداران ایران آمادی نبرد و گرفتن انتقام هستند این نامها را از این پس به یاد بسپریم کاوه آهنگر که هنوز زنده است و در کنار فریدون است قارن فرمانده سپاهیان، ایران فرزند دلیر کاوه دلیری از خاندان کافگان سرداران شیرو و آفگان سردار گرشاس بازمانده از توار شاهان. سام دلی پسر نریمان که پهلوان پختوانا اندام است از بزرگان و دلاوران سیستان سردار قباد و سردار دلاور کشواد زرینکلا نامهایی که پشت کوه را می‌لرزانند و زهره شیر را می‌ترکانند دلاورانی که چون بر گردۀ زمین پای میگذارند زمین پشت خم می نامهایی که شنیدن آنها خواب و آرامش را از سلم و تور خونریز دور کرده است به سلم و به تور آمد این آگهی که شد روشنان تخت شهید. دل هر دو بیداد شد پرنهی که اختر همی رفت سوی نشیب نشستن هر دو پرندیشگان شده تیره روز جفا پیشگان یکا یک بران رأیشان شد درست کزان رویشان چاره باید جست کسوی فریدون فرستند کس به پوزش کجا چاره آن بود و بس. سلم و تور ساگی مرگ را بر سر خود گسترده می با این همه از روی بدنهادی می برای پدر پیامی بفرستند و از گذشته پوزش بخواهند. و بر آتش خشم او و ایرانیان آبی بپاشند تا فرصت چار اندیشی فراهم شود. آنها در پیام خود بوشت یا سرنوشت و تقدیر را عامل آن بیدادگری می خوانند. و میگویند شیو و اجدها هم که باشی اسیر سرپنجی بوشت یا تقدیر خود هستی و همه اعمال و رفتار ما ناشی از بوشت و سرنوشت ما بود بازی چه حقیری در دست سپه رو آسمان و آنگاه دیو پلیدی و زشتی بوده نبشته چنین بود من از بووش به رسب بووش اندر آید روش و جبر جهانسوز و نر اجدهاز دام قضا هم نیابد رها و دیگر که بی باک و ناپاک دیو مرید دل از ترسی که به ما بر چنین چیره شد رعی او که مغز و فرزانه شد جای او. همی چشم داریم از تاج بر که بخشایش آرد به بابرمگرد. اگر چه بزرگ است ما را گناه به بیدانشی برنهد پیشگاه. و دیگر بهانه سپهر بلند که گاهی پناه هست و گاهی گزند. سبان دید که میان چون نبند میان بسته دارد بحر گزند. سلمو تور بدنه در پیامی که برای پدر فرستادند فریب کارانه از او میخواهند که منوچه را نزد آنان بفرستند که ما تخت و تاج خود را به دو خواهیم سپرد که آنگاه خود او را نیز چون خون ایرج بریزند اگر پادشا راسان از چین ما شود پاک روشن شود دی منو چه را با سپاهی گران فرستد به نزدیک خواهش گران بدان تا چو بنده به پیشش به پای بباشین جاوید این است رای مگر کان درختی کسکین بروز به آب دو دیده توانیم شست ببوییم تا آب و رنجش دهیم چو تازه شود تا گنجش دهیم های سلم و تور ...با کاربانی از حلایان به سوی ایران شهر به راه دفتر. دربار پادشاهی فریدون و منوچه غرق در عظمت و بزرگی اینک کانون خشم و انتظار است. چون فرستاده از راه میرسد، شاپور یکی از سرداران جوان ایران او را به درون کاخ راهنمایی میکنه. فرستاده ای سخت ترسیده از شکوه عظمت دربار ایران... با پیامی بی پایه و اساس و بی بون و سر و سرشار از دروغ و فریب برون آمد از کاخ شاپور گرد فرستادی سهرم را پیش بود فرستادی چون دید درگاه شاه پیاده دوان اندر آمد برا چون نزدیک شاه آفریدون رسید سر تاج و تخت بلندش بدید زبالا فرو برد سر پیش اوی همین بر زمین بر بمانید رو. روید گران مای شاه جهان خدای به کرسی زرینش فرمود جای فرستاده بر شاه کرد آفرین ای نازش تاج و تخت و نگین. زمین گلشن از پایه تخت توست هوا روشن از مایه بخت همه بنده خاک پای تویم همه پاک زنده به رعب تویم چو بر آفرین شاه بکشا چه فرستاده پیشش گسترد میر گشاده زبان مرد بسیار خوش، بدو داد شاه جاندار گوش پیام دخونی به گفتن گرفت همه راستی ها نهفتن گرفت به گفتش بدان شاه کشت پسر پیام دو فرزند بیدادگر ذکردار بد پوزش ها راستن. منو چه را نزد خود خواستن میان بستن او را به رهی سپردن به دو تاج و تخت مهی خریدن از او باز خون پدر به دیوا و دینار و گنج و گوهر فرستاد گفت و سپه شنید مران گفت را پاسخ آمد کرد شو بشنید شاه جهان کت خدای پیام دو فرزند ناپاک رای یکا یک به مرد گرانمایه گفت خورشید را چون توانی نهفت. نهان دل آن دو مرد پلید ز خورشید روشندتر آمد پدید شنیدم همه هرچه گفتی سخن نگه کن که پاسخ چه یاوی زبون بگویند و بی شرم و بی باک را دو بیداد مهر ناپاک را که گفتار خیره نیرزد به چیز از این در سخن چند رانیم نیست اگر بر منو چهرتان میخ خواست تن ایرج نامورتان کجاست که کام دد و دام بودش نهوف سرش را یکی تنگ تابوت جفت کنون چون از ایرج به پرداختم به بر منوته نبینم نبینند رویش مگر با سپاه ز پولاد بر سر کلا و با گرز و با کاویانی درفش زمین گشت از نعل اسبان به نفش سپهدار چون قارن رزب خواه چو شاپور نستو پشت سپاه به یک دست شیدوش جنگی به پای چو شیروی شیروژن رهنمای چو شاه تلیمان و سرو یمن به پیش سپاهندرون رایزن زند درختی که از چین ایرش بروست به خون برگبارش بخواهیم شست از آن تا کنون چین اوچست نخواست که پشت زمانه ندیدیم راست راست نخوب آمدی باد و فرزند خیش که من جنگ را کرده می پیش کنون زن درختی که دشمن بکند و شاخی بر بلند بیاید کنون چون حشب رژیان بکین پدر تنگ بسته میان ابا نامداران لشکر به هم چو سام نریوان و گرشاس جم سپاهی کس کو تا کوه جای بگیرند و کوبند گیتی به پای و دیگر که گفتند باید که شاه سکین دل بشوید ببخشد گناه که بر ما چنین یشگردان سپه خردخیره شد، تیره شد جای می همه پوزش نابکا چه جه گفتان جهانجوی نابورد بار که هر کس که تخم را بکشت نخوش روز بیند، نخورن به هشت گرامورز شاید زیزدان پا شما راز خون برادر چه با روشن جهاندارتان نیست شهر سیه دل زبان پرز گفتار نه مقافات این برد به هر دو جهان بیابید و این هم نماند نهان صدیگه فرستادن تخت آج بر این جند پیلان و پیروز تاج بدین بطرهای هنرگونه گون نجوییم کین و به خون سر تاجداران فروشم بذر که نه تخت باد و نه تاج و نه فر سر بی به ها را ستاند به ها بدتر از بچه ها که گوید که جان گرامی پسر فروشت بذر پیر گشت پدر بدین خواسته نیست مهرانی نیاز سخن چند گویین چندین دراز. قدر تا بود زنده با پیر سر از این چین نخواهد گشادن کمر منو چه از بهر این چین خدای پدید آورید و برآمد به پا ایما چنیدم تو پاسخ پر شنو یک بگیر و به زودی برو استاد کنخول گفتار دید نشست من و چهر سال آردید به پشمرد و برخواست لرزان چای همانگه به آورد پای همه بودنی ها به روشن روان بدیدان گران مایه مرد جوان که با سلم و با تور گردان سپیر نبس دیر چینندر آرد بیامد به, بی به کردار باد دمان سری پرز پاسخ دلی پرگمان رستاده سلم و تور که دریافت است بسیار زود باشد که روزگار بر سلم و تور خواهد گرفت به شتاب خود را به اردوگاه مشترکان دو میرساند و گزارش طولاوری از دیدار خود از قلب پادشاهی ایران و دیدار با فریدون با دو ریز میدن خرامانی شدم پیشان چون یکی تخت پیروزه دیدم بلند نشسته برو شاهیار چو ماه ز رخشان به سر بر کلاه منو چه چون راد سر بلند به کردار دیگ بند نشسته بر شاه بر دست راست تو گفتی روان و دل پادشاه است آهنگران کاوه پرهنر به پیچش یکی رقص دیده پسر کجا نام او قارن رزم زن سپهدار بیدار لشر شکن چو شافی من سر دست چو پیروز گرشاس گنجیو بشم به کفتیق سام نریمان به پای همی خون چکانی از چین به جای شمار در گنج ها ناپدید کسند در جهان این بزرگی ندید همه گرد ایوان دروی سپاه به زرین عمود و به زرین کلا سپهدارشان قارن کافگان به پیش سپه اندرون آفگان مبارس چو شیروی درندشیر چو شاکور یل جند پیل دلیر چو بست بر کوه پیل کوز هوا گردد از گرد چون آم نوست جرایند زیما به جنگان گروه هامون و هامون چکو همه دل پراسکین و پرچین بر او جز از جنگشان نیست هیچ آفزون بر ایشان همه برشمردان شدید سخن نیست که از آفریدون شنید دو مرد جفا پیشه را دلز درد بپیچید و شد رویشان لاجبه سلم تور در میابند که نیرنگشان برای دعوت و سپس ریختن خون منوچهر کارساز نیفتاد است تور به سلم میگوید جای نشستن و آرامش نیست که شاید منوچه که بیگمان نشان دلیری از ایرج دارد در جنگ پیش دستی کند که او آموزگاری چون فریدون پدرم نبیره چون منو رو و نیا چون فریدون این ترکیبی ترسناک است و ما باید هوشیارانه در جنگ پیش دستی کنیم نشستند و جستند هر گونه را سخن را نصر بود پیدا نپا به سلم بزرگان یهی یه طور گفت آرام و شادی به باید نخفت نباید چان بچه نرشیر شبت و گردد دلی چنان نامور بی هنر چون بود کش آموزگار آفریدون بود نبیره چو شد رایزن بانیا از اون جایگاه بردمت کیمیا به باید مسیجید ما را به جنگ شتاب باوریدن به جای دلن سلشگر سوارن برونی ز چین و ز خاور سپه ساخت فتا در آن بوم و بر گفتگو جهانی به نهادند رو. سپاهی که آن را کرانه نبود بدان بود که اختر جوانه نبود دلشکر ز توران به ایران کشید به خفدان و خودن در ناپلی. ناپدید اباژنده پیلان و با خاسته دخونی به کینه دل‌آراسته قلب قلم پادشاهی ایران شهر کوست در دشت تمیشه پهلو و یابنیشه ناربر است. در این قلب تپنده است که فریدون خبر حرکت سپاهیان مشترک سلم و تور را میشنود و به او آگهی میدهند که دشمن از رود جیخون گذشته است. اما خبر با فریدون رسید. تلشگر بدین سوی جیخون رسید. به فرمود پس تا منوچه شاه زپه رو به خامون گذارد سپاه منوچهر گفت ای سرافراز شاه که آید به نزدیک تو کینه نخوا مگر برد سقاوت به روز کار به جان و تن خود خورد زی خوا من اینک میان را به میزره میزره به که نک شایم ازتن به چین جستن از دشت آوردگاه برارم به خورشید گرد سپاه کسان انجامن کس ندارم به مرد کجا جز پیارند با من نبرد منو چرخ به فرمانده سپاکیان خود قارن کافگان دستور میدهد سپاکیان ایران را از پای تخت به دشتهای مناسب نبرد به فرمود تا قارن رز جود سپهلو به دشتنده را برد روید شاه بیرون کشید درفش همایون به حامون کشید همی را لشگر گروه ها گروه چه دریاب بجوشید حامون و کوک چنان تیره شد روز ز گرد تو گفتی که خورشید شد لاجه سلشکر سلشگر بر آمد سراسر خروش همین کر شده مردم تیز بوش. روشیدن تازی از بانز دشت زبانگ طبیره همین برگذاشت سپردار چون قارن دا، سواران جنگیش سی ست بزار. همه نامداران و جوشنبران برفتند با گورس هاگ گران دلیران لشکر و شیرشیان همه بست بر ایرچ میان به پیشندرون کاویانی درفش به چنگندرون تی هاگ بنچ. منوچهر با قارن رزم زن برون آمد از بیشه نارون بیامد به پیش سپه برگذشت بیا راست لشگر آن په دشت. چپ لشگرش را به گرشاست داد عبر میمنه سام یل با قبار رده برکشیدن حد سپاه سپه با سر در قلگاه همی تا چون مه میان گروه و یا محر تابان بر افراز کور سپه بود چو قارن مبارز چو سام، همه کی ها برکشید از نیان به پیشندرون چون قباد کمین بر چو گرد تلیمان نجاد یکی لشگرا راسته چون عروس به شیران جنگی و آبای کورس سلم از آبادگی سپاخیگان آگاه میشه تابان به میدان نبرد نزدیک می جیخون و دژ استوار آلانان را پشت سر گذاشته به قلمرو پادشاهی ایران شهر نزدیک شدند که به طور آگهی تاخدند که کیناوران جنگ بر ساختند. به حامون کشیدند سف سخون جگر بر لباورد کف دو خونی همان با سپاه گران برفتند چند از چین سران کشیدن به دشت نبرد آلانان و دریا پس پشت کرد قباد دلاور پرتجربه فرمانده سپاه پیش یا طلایدار سپاهی است نخستین برخورد بین تور و قباد روخ میدد و در این نخستین برخورد تور به قباد میگوید به پادشاه خود منوچه بگو اگر از ایرج برادر ما دختری باز ماند تو که هستی که خود را شایسته ی پادشاهی ایران میدانی یکا یک تلایه بر آمد قباد چطور آگهی یافت آمد به دو گفت نظر منوچه شو بگویش که ای بی پدر شاهن و اگر دختر آمد زیرج نجات. را تیغ کوپال و جوشن که داد به گفت آری گزارم پیام بر اینسان که گفتی و بردی تو نام ولی کن چون دیشه گردد براز خرد با تو نشیند براز بدانی که کاریست زندازه بیش به ترسی از این خام گفتار هیچ اگر بر شما دام و دد روز و شب همی گرگدی نیستی بس عجب کس بیشه ناروان تا به چین سواران جنگت و مردان کین درخشیدن تیت های بنفش چوبینی با کاویانی درفش به دل و مغز از نهید بلندی ندانی باز از نشید چوبشنی گفتار فرخ قباد گشت و برگشت و پاسخ نداد قباد از پیش سپاخ تور باز می کردند. و گزارش برخورد خود را با تور به منوچر میدهد و پیام توحین آمیز تور را برای منوچر باز می پس پسانگه بی به نزدیک شاه به گفتان چه بشنیده سان رسب خواه منوچهر خندید و گفتان گفتانگهی چون این نگوید مگر ابلهی سپاس از جهاندار هر دو جهان شناسنده آشکار و نهان که داند که ایرج نیای من است فریدون فرخ گوای من است کنون گر به جنگ اندرار سر شود آشکارا نشان به صور خداوند خورشید و ما که چندان نمایم ورا دستگاه که برهم زند مجه زیر و زبر عبی تن به لشگر سر بخواهم از او چین فرخ پدر کنم پادشاهیش زیر و سبر شب هنگام فرا میرسد سپاهیان ایران پس از آنکه به اطراف دشت نبرد دارن و نگهبانانی میفرستد در حالی که سرد پادشاهی من در کنار او ایستاده است در برابر سپاهیان ایران نیستد و خطاب به آنان سخنانی به بدانگه که روشن جهان تیر گشت طلایه‌ پراکند بر گرد دشت به پیش سپاه ارن رزم زن عبارای زن سرف شاخ یمن خروشی برآمد ز پیش سپاه ای نامداران و شیران شاه بدانید كه این جنگ اهریمن است همان روز جنگ است و كه جستن است میان بسته دارید و بیدار بی همه در پناه جهاندار شب تیره و سرشار از انتظار بر سپاهیان ایران میگذرد انتظار برآمدن خورشید تا در نبرد با اهریمن فریب و نیرنگ و ستم پیشگی یار احورای پاکی و دلیری و مهربانی باشند و سرانجام شب به پایان رسد چه از جای خود بردمی میان شب تیره اندرخم منوچه برخواست از قلبگاه عباد جوشن و تیغ و رومی کلا سپه یکسره نعره سنان سنانها به اندر فراشتن از خشم سر پرزچین همه بر نوشتن تو گفتی زمین چپ و راست قلب و جناح سپاه بیا راست لشکر چوبای از شاد، زمین شد بکردار کشتی براب، تو گفتی سوی جنگ دارن چتا بزد محره بر کوخه جند پیل، زمین جنب جنبان چو دریاه نی، همان پیش پیلان طویل زنان روشان و جوشان چو پیل دمان یکی به است گفتی به جای از شیفور و نالیینه یعنی کرد نال از جای یک سرچکور دهاده برآمد زهر دکن no! یابان چو دریای خون شد درست تو گفتی ز روی زمین لاله رست. چنان چون درآمد سپاه از و را همی رزم جستی سپاه از سپاه است. به و تیخ و گرز و کمان بمانده در ایشان دو چشم دمان به یه جند پیلان درون در چنان چونزه بیجاده باشد ستون زمین زیر سوم اسبان و گام جنگ جویان می. این پیلان چنان در خون پرو رفته و خون رنگ است که گویی این ها ستون های از ایجاده و یاهو هستند در اینیان دلاوری از ترکان عرصه را بر سرداران سپاه ایران تنگ کرده است ایکی بود شیروی نام دلیل و سرفراز و نام یامد ز ترکان چو ایک لخت کو شدند از نهیبش دلیران ستون و قارن نگه کرد او را به دید بزد دست و شمشیر که این برکشی به چون نرشیر یکی نیزه زد بر میانش دلیر دل قارن آزورده شد از نماند نماندان زمان با دلاور شک سام سپه بود به دوبنگری به قرید چون رق و پیشش کرد نگه کرد شیرون و شد چون پلنگ به پیش دلاور در آمد به جمع. که گرد زد بر سر سام شیر که شد سام را روی همچون زری سر و ترکان نامبر کرد و از آن پس به شمشیر کیم دست بود سوی لشگر خیش کردن روی دو گرد سرفراز پرخاش و سام دلاوران ایرانی که هر دو زخم برداشتن، از پیش روی پهلوان ترک شیروی کناب می و شیروی گستاخ خطاب به منوچه، سراغ برترین دلاور سپاهش گرشاست را می گیرد. به پیش صف آمد به کردار باق، به فررخ منوچه آواز داد. آن پخلوان تو پخدارتان دارتان که گرشاست خاند جهاندارتان. اگر در نبرد من آید کنون، به پوشانمش لاله لالگون. در ایران جزو نیست هم همتاب من، ندارد نیز پایاب من. در ایران و توران چو من نیست کست، همآورد من پهلوان است و بس سر تیغ من خون شیران خورد، همان گرز مقز دل ایران خورد. چو تیغ من از کین آید برون کند هفت کشور چو دریای خون، و بشنید گرشاز زن چون نزدیک سالار خاورسید رسید به شیروی گردن کشاباز کرد زبانگش بلرزید دشت نبع ای خیر سر روبه ساز، مرا کرده یادزان سرفراز تراپی که منظور و است کنون مقفرت بر تو خواهد گریست چنین دار پاسخ شیرو منم سر ژنده پیلانز تن برکنم برنگیخت اسب و بیامد دمان تو گفتی مگر گشت کو بیرمان سرفراز چون بنگرید بخندید چون ترک شیرو بدید بدو گفت شیرو پی مند به پیکار پیش دلیران مخند بدو گفت گرشاز که دیو مرد چگونه نخندم به دشت نبر که پیشم تو آی و جنگ آوری مرا خنده آید بدین داوری بدو گفت چی پیر برگشت بخت چرا سیر گشتی تو از تاج و تخت که رسم مرا کرده یارزوی آرزوی روان سازم از خونتی در وجود بشتی گرشاست گران ززین برکشید و بیه به زدبر سرش گرزه گابرون به خاک خاکندر آمد سر جنگ زمانی به در خاک خون همه مغزش از خود آمد بروند بران خاکبر جان شیرین بداد تو گفتی که شیرو ز مادر نزاد بدون پیروزی گرشاست بر شیروی سپاهیان ایران دست به تهاجمی همه جانبه می و کار بر سپاه سلم و تور زار می شود. اما اینک این تیرگی شب است که از راه می رسد و چادری سیاه بر دشت نبرد میکشد و ناگذی ایرانیان از حمله باز می روند اینک در آن دشت پهناورد تنها صدای مجروحین و ناله زخم است که به گوش می آید. سپاهیان سلم و تور درمانده و شکست خورده و سپاهیان ایران پیروزمند و تشنه نبرد دوباره هر کدام سرانجام به اردوگاه خود باز میگرد سلم و پریشان و ترسید از منوچه و ایرانیان بران می شوند که فردا هنگام روز از نبر سر و در انتظار شب و یک شبیخون بخت خود را در تیرگی جستجو. سلم و تور آمد از قمب جوش براه شبیخون نهادند گوش بگفتند فردا نسازی جنگ که این مرد برناست بس تیز چند شب روز شد کست نیامد بچند جنگ دو جنگی گرفتند رأی درنگ که از روز رخشند میمی برفت دل هر دو جنگی زکینه بتفت به تدبیر با یکدیگر ساختند همه رأی بیهوده انداختند که چون شب شود ما شبیه خون کنیم همه دشت و هامون پر از خون شب و روز شد در نهان، سیاهی گرفتش سراسر جهان دو را لشگر آراستند، خون همی بارزو خواستند اما کاراگهان سپاه منوچه، وی از توطعه و تداروک شبیخون سلم و تور پیش آگاه کردند منوچر سپاه ایران را به قارن می سپارد و خود با سی هزار مرد جنگی در انتظار حجوم شبانه سلم و تور کمین می گیرند کاراگهان آگهی یافتند به سوی منوچه بشتافتند شنیده همه با منوچه شاه بگفتند تا برنشاند سپاه منوچهر بشنید و بکشاد گوش سوی چاره شد مرد بسیار خوش سپه را سراسر به قارن سفر کمینگاه بگزید سالار گرد به برده سران نامبر سی هزار دلیران و مردان خنجر کمینگاه را جای شایسته دید سواران جنگی بایسته دید. شب تیره شد تول با صد هزار بیامد کمربسته کارسان شبیخون سگالیده و ساخته سنان را به عبرندر افراخت چو آمد بر جای خیش درفش پروزنده بر پار پیش جز از جنگ و پیکار چار ندی خروش از میان سپه برششد گرد سواران هوا بست نید چو برد درخشنده پولاد تی چو شب روز شد همچنان جنگجوی دلشگرد به روینده را برد روید هوا را تو گفتی همه برف روید چو الماس روی زمین را بسید به درون بانگ پولاد خواست به افرندرون آتش آتشو با. بلشگر به یک جا شده سخت کوش به گردون در افتاد بنگ و خروش شب تیره و روی هامون چو قیر زهر سو به باریده باران تیر سپهدار ترکان چو باد دمان به تیغا وریده سپه آن زمان جهانجور قارن چه آشغد پیل زمین کرده از خون چه دریاه میر ز خون روی صحرا چه جنگ روان ز بانگ سواران جهان پرفقان باقی سپاهیان ایران به فرمانده پی قارن به سی هزار مرد جنگی همراه با منو چه هم بود کاخ تور ناگهان در می از پیش و پس در محاصری منوچه و قارن است و با دیدن منوچه چاره را در گریز در آن و آشوب و دار رو بکش نبا عصد زور و نبا مرگ خوش براورد شا از کمینگا سر نبا تور را از دروی گذر پس و پیش و لشکر جنجون به روی اندر آورده بودند رو چو توران چناندی همگینده بود به دانیز پشت بخ برگرشت را به پیچید و برگاشت برآمد زلشگر یکی حاله پو دمان از پس منوچه شاه رسید اندران نامبر چین خواهد به طور دلاور چو اندر رسید درفش و سر و ترک او را بدی یکی بانگ برزد به بیداد گرد باشی ستم کار به کرد ببری سر بی چنین ندانی که جوی جهان است و چین یکی نیز انداخت بر پشت اون نگونساخ شد خنجر از مشت اون از برگرفتش به کردار باد بر زمین داد مردی بداد سرش را همان گهز تندور کرد دد و دام را از تنش سود. دای است در آن حیاهوی جنگ و مرگ و دهشت که بازی روزگار و فلک را بازی شگفتی میخواند و ما را پشتار میدهد که دل به روزگار نبنید فلک را ندانم چه دارد گمانید که ندارد کسی را به جنب خود نمان. کسی را اگر سالها فربرد، در او جز به خوبی دمین ننگرد چو ایمن کند مرد را یک زمان از آن پس بتازد برو بیگمان ز تخت اندر آرد نشاند به از این کار نی ترس دارد نباش به مهرش مداری برادر امید اگر چه دهد بیکران کراند نباش. در سبر خرد بزرگ منوچه بر سلم و تور پیروزی یافت او در نامهی که برای فریدون میفرستد از جزئیات نبرد خود با تور و کشته شدن او سخن میگوید. گوده بر نیزه بگذاشتم زجاگز بر زینش برداشتم بیفتندمش چون یکی اژدها بریدم سرش زانتن بیبه ها چنان چون سر ایرج شهریار به تابوت زر اندرف خا بر برو بر و شرمش نداشت جهان آفرینم برو برگماشت رهاندم زتن همچنان جان او که ویران کنم کشور و خان او سر او به نیزه فرستادم امد دل بند اندو بکشادم فرستادم اینک به نزد نیا بسازم کنون سالم را کیم بسازم همان کار سالم بزرگ روام بر سرش همچو برمیش گرد اگر سالم در جرف دریا شود وگر بر فلک چون سریا شود به چنگ آرمش سر ببرم زتن بسازم برا کام شیان کفرم سالم چون از کشت شدن تور به دست منوچهر آگاه می شود به یک بار در هم می شکند. با این همه امیدوار است که در رویارویی با منوچهر بر روح پیروز گردد امید دیگر او این است که اگر ناگزیر به عقب نشینی شود دژ محکم و استوار آلانان او را پناه داده از شمشیر انتقام روزگار و منوچهر برهاند حسنی که در میان هیزابه های دریا ساخته شده و برای زمانی بستراز جهت پایداری ساکنانش در برابر هر تهاجمی خرد و خوراک و آب و سلاح و پوشاک و حتی زروسین، زخی به سلما گهی رفت زان گاه و وزان تیرگی کندر آمد به ما قمین گشت و پیچان شد از روزگار به مرگ برادر بمویید زار پس پشتشان در یکی حسن برآورده سر تا به چرخ کبود چنان خواست کایت بدان حسن باز که دارد زمان نشیب و فراز اما منوچه زیرک و هوشیار است همزمان با سالم نیز میاندیشد که چاره سالم در گریز و پناه گرفتن در دش آلانان است پس آنگه منوچه آن یاد کرد گر سالم پیچت دشت نبر آلانان دشش باشد آرام کار سزد گر بروبر بگیریم راه که گر حسن دریا بود جای او کسی ز بن پای او. یکی جای دارد سرم در صحاب به چاره از قهر آب نهاد چیز گنجی به جای بر اون نفکند سایه پر همان مرا رفت باید به این زود رکاب و انان را به باید بسکن. منوچه اندیشه خود را با فرمانده سپاهش قارن در میان کسارند و قارن از او میخواهد ویرانی بیرانی دژ آلانان را به او و شیروی و شش هزار مرد جنگی بسپارد منوچه پیشنهاد قارن را می و قارن انگشتر و درفش طور را که پس از کشته شدنش به دست سپاه ایران افتاده بود با خود همراه آرن سپاه شش هزار نفری را به شیرو این سپاه که دورتر از آلانان کمین بگیرد و خود بران است که به کمک انگشتر و درفش تور، دژبان و یا فرمانده دژ آلانان را فریب داده داخل قلعه شود تا در فرصت مراسب کار ورود سپاه شش هزار نفری خود را به داخل دژ امکان پذیر سازد به زیر دژ آلانان میرسد و خود را فرستادی از جانب تور معرفی میکند نمودش به دژدار انگشتری چو انگشتری دید بیداوری چو دژبان چنین گفت هارا همان مهر و انگشتری را بدی همانگه در دژ گشادند باز بدید آشكارا ندانست راست قارن به داخل دژ آلانان فرا رسید است او در انتظار شب هنگام است شیروی و شش هزار مرد جنگی آماده دریافت اشاره و علامتی از جانب قارن هستند. شب فرا می رسد قارن بر پایه قراری که با شیروی دارد بر بالای حصار دژ درفشکیان را به احتزاز در می چیروی و شش هزار مرد جنگی به سوی آلانان حمله بر می چو شیروی دیدان درفشکیان همه روی بنهاد زی پهلوان در هاست بگرفت و اندر نهاد سران را خون بر سرف سر نهاد به یک دست قارن دگر دست شید به سربر زتی قاتش و آزید آلانان این نکل میران شده است از دژ هیچ اثری برجای نیست چه بر تیغ گمبت رسید نه بود پیدا نه دشبان پدید نه بود پیدا نه برا یکی دود دیدی سراندر سحا خروش سواران و فریاد خواست درخشیدن آتش و با خواست چه تابان ز بالا بگشت همانیدژ نمود و همان روی دشت قارن پیروزمندانه به اردوگاه منوچهر باز میگرد منوچهر پیروزی او را میستاید و به او آگاهی میدهد که جنگآوری دلیر و بیباک به نام کاکوی که نبیره زحاکه است از دژ هوخت گنگ با یک هزار سپاخی به یاری سلم آمده است و در یک رودر رویی با سپاهیان ایران بسیاری از دلاوران ایران را از پای درآورده است قارن فرمانده سپاه ایران از منوچهر می خواهد که به او اجازه دهد با کاکوی نبرد تن به تن کند. اما منوچه می خود با این دلاور تازه از راه رسیده رو در رو شود بدو گفت پس نام بر شهریار دل را بدین کار قمدین مدار تو خود رنجه گشتی بدین تاختن سپه بردن و چینه را ساختن کنون گاه جنگ من آمد فراز تو دم برزد ای گرده گردن اطران به گفتن آواز شیپور و نای برآمد به گردون ز پرده سرای دیگر دشمن سپاهی به جنگ در ناگه همه تیمز چند ز گرد سواران و آوای کوز هوا قیرگون شد زمین آب نوز. تو گفتی که الماس جان داری همان گرز و نیزه روان داری دهاده ده خروش آمد و داروگیر هوا دام کرکست شد از پرگتی به سرده خون پنجه دست تیر چکان قطره خون ز تاریک می تو گفتی زمین موج خواهد زدن و از آن موج بر اوج خواهد سدن براوی یک به دیگر سپا جهان گشته چون روی زنگی سیاه نبینهٔ زهاک جنگاور تازه نفسی که به سپاه سلم پیوسته است در آن گیر و داد خود را به منوچه رسانده خواستار نبرد تن به تن با او میشود همان دم دمان گرد كاكود شیر به پیش سپاه اندر آمد دلی میان دو صف شاه آزرم جوی همان گرد كاكود بدو كرد فرون رفت كاكودو زد غریب براقیز با شاه چون نردی به کون بر حملهی کرد سخت براقیز با دیو جنگی زبخت زهردو قریبی برامد که کو به درگید و گشتند ترسان گروب تو گفتی دو پیل هر دو جیان گوشاده بکین دست و بست میان یکی نیزه زد بر کمربند شاه که جنبی بر رومی کلا زره تا کمربند او برداری، ز آهن تن پاکش آمد پدید اکی تیغ زد شاه برگردنش همه چاق شد جوشنند در خنش دو جنگی بر این گونه تا نیم روز که برگشته شد پور گیتی پروز همین چون پلنگان برآویختند همه خاک با خون براویختند چه خرشید تابان ز گنبت به گشت به خون قرقه شد کوه و دریاب و دشت همین گشت پرخون برا کوه و دشت ز اندازه آویزشان در گذاشت در ها بر جنگ تنگ بیفشورد ران و بیازی چنگ کمربند کاکون به خار ززین برگرفتان تن پیلوار بیانداخت خسته بران گرم خاد به شمشیر ترنش برون سینه چا شدان مرد تازی ز تیزی به چنان روز بد را زه مادر با کرشت شدن کاکوی به دست منوچه همه امیدهای سالم تبدیل به یعنی شد و ناگزیر. راه گریز به سوی دژ آلنان را در پیش گرفت. سپاخیان ایران سپاهیان او را دنبال می‌کند. طول کشته شد. پشت خاور خدای شکسته شد و دیگر آمد. چرا؟ توهی شد زکین سرکینه داد. گریزان را سوی حساب. پسندر سپاه منوچه، شاه، دمان و دنان برگرفتند، را سال با امید فراوان از چنگ سپاهیان ایران گریخته خود را به کرانی آبخان نبسند نشانی از برج و باروی دژ آلانان و از خواب و گریزگاه نهایی او بر نیست او حراسان از مرد دیوان بار در پی گریفتن از چنگال انتقام منوچه است که اینک زین و برگستوان و پوشش اسب خود را به دور ریخته تا سبک بتواند سال را تعیید کرده از او انتقام دیگر با ستان شد سلم تا دریا کنار ندیدید کشتی و راه گزار like پر از خشم و پرکین سالار نو نشست از بر چرمه تیز رو بیافگند برگستوان و بتاخت به گرد سپه چرمه اندر نشان سهل ناامیدان اسب خود را مهنی زده می یک پارچه آتش انتقام خشبین و فریاد زنان او را دنبال می و سرانجام چون شبه مرد به سهل نزدیک می شود گهی تنگ در شاخ رون خروشی ای مرد شوم به کشتی ز بحر کلا کلاح بیافتی چند بویی برا کنون تاجت آوردم ای شاه و تخت به بار آمدم خود سواری درم تاج بزرگی گریزم بشو ری دونت. گاهی بیا راست نو درختی که پروردی آمد به بار ببینی همه برش در کنار گرش بار خار است خود کشته ای و گرپرنیان است خود رشته ای چو در دور تنگ استوار کنم همه نیک و در کنار کنم یک ها یک به تنگی رسیدن در او یکی تیغ زد بر, بر و گردنش به دو نیمه شد خسروانی ترش منوچه فرمان می سر از پیکر بیجان سالم جدا سپاهیان ایران قریب شادی سرم با کشت شدن سالم سپاهیان شکست خورده او راه گریز در پیش می گیرند اما گریزگاهی در کار نیست هزاران هزار اسیر از لشگریان سلم و تور پیشانی بر خاک تسلیم میسایند و بزرگی از میان آنها از منوچه درخواست بخشش میکند منوچهر بر بلندایی میایستد و به هزاران اسیر جنگی میگوید که و نفرت من از من میخواهد که خون شما را بریزم اما من خاستو کام خود را به خاک می اندازم و نام خود را والایی میبخشم. من کام خیز به خاک افکنم برکشم نام هر هران چیز کن نظر حیزدیست از احریمنی آز دست بدیست سرا سرز دیدار من دور باد بدی را تن دیب رنجور باد شما اگر همه چین دار منی اگر دوست داری دویار منی گنه کار پیدا شد از بی گناه چو پیروز گرداد مانده هستا کنون روز است و بی داد شد سران را سر از کشتن آزاد شد همه مه جویید و افزون کنید زتن آلت جنگ بیرون کنید بدان راز بد دست کوتاه کنید همه مو بدان بر خرد کنید خردمند باشید و چیز دین اضافت همه پاک و بیرون زکین به جایی که تان هست آباد هم اگر تور اگر چین اگر مرز روم همه باد بادتان پایگاه، The ocean, Rabanne, by the tongue, Jaga. اون چهر فرمان می‌دهد دهد سر سرم را به نزد نیایش فریدون برد و همراه این ترین قریمت جنگ نامه نیز به فریدون می یکی نامه بنوشت نزد نیا پر از جنگ و از چاپ سپاس از جهاندار پیروز کرد کزوی است نیرو و فر رو همه نیک و زیر فرمان اوست همه دردها زیر درمان است کنون بر فریدون از او آفرین خردمند و بیدار شاه زمین نماینده رازهای نهان و تاج و تخت مهان گشاینده بندهای بدی همش رای و هم فرهی زدی کشیدین چین از سواران چین گشادیم بر ایشان کمین به نیروی شاه آن دو بند گران گشادیم بر دست افسونگران سرانشان بریدم به شمشیر کین بشستم به پولاد روی زمین نماندم به گیتی یکی کینور به فر ریدون پرخاش خر. با قنائم و خاسته های بسیار سپاه پیروزمند خود را از راه دریای گیلان به ساحل ساری میرساند و ساری به سوی آمول و دشت تمیشه پایتخت ایران حرکت می کند ز دریای گیلان چو عبر سیاه دم آدم به ساری رسیدان سپاه به ذرین ستام و به زرین کمر به سیمین رکاب و به ذرین سپر ابا گنج و پیلان و با خاسته پذیر شدن را بیاراسته چو آمد به نزدیک شاه و سپاه فریدون پیاده بیامد برا همه دیل مردان چشیر یله ابا طوق زرین و مشکین کله از پشت شاهندر ایرانیان دل ایران و هرگ چشیر جیان بپیش پزش پیل و شیر پس جنده پیلان یلان دلیر در افش فریدون كامت پدید سپاه منوچهر سف بر پیاده شد از اسب سالار نو برختینو عآیین پر از باغ نو زمین را ببوسید و كردآفرین بر آن تاج و تخت و كلاخ و نگین فریدون بفرمود تا برنشست ببوسید و بستو رویش به دست و ایرانیان شادمان از چه استقبال میکنه این شادی هنگامی به اوج میرسد که سام نریمان نیست پیوز از جنگ با جادوان در هندوستان به ایران شهر باز میکنه. و با خود قنائمی بس فرابان به ارمغان می آفرد فریدون سام را می سپارد و به او آگاهی میدهد که از پادشاهی کنار گیری می کند و منوچه پادشاه آینده ایران را به سام می سپارد به شد مرا روز و چندین گذشت سپه از بر گردان بگشت کنون چمبری گشت سر به سهی نماند به کس روزگار بهی درختی که سر برکشت زنجمن مرور آرسد تاج و تخت که سپردم گفتین نبیره به تو که من رفتنی اشتم این نیک خود تو را به هر کار شویار بر چنان کن کس تو نماید خننن. گرفتش سبک دست شاه جهان بدادش به دست جهان هنگاه فریدون خست از این همه فراز ها و نشیب ها از خداوند فرارسیدن رسیدن پایان زندگی خود را به دعا می خواهد آنگه سوی آسمان کرد رو ای داد گرداور راست گوی تو گفتی که من داد گردآورم به سختی ستم دیده را یاورم همم هم داد دادی و همداوری همم تاج دادی، هم انگشترید، همه کامها دادیم ای خدا، کنون مر مرابر به دیگر سران. از این بیشتر اندرین جای تنگ، نخواهم که دارد روابنم. فریدون روزگار سکوت و اندیشیدن و انتظار پرارسیده است فریدون بزرگ پس از سپردن تخت و تاج ایران به منوچه کناری بگذیده او در تنهای بزرگش اندوهی از این دارد که جان و قلبش را چنگ می‌زند. اندوه از دست دادن سپسر که در قبار کینه توزی و جاه طلبی و آسمندی گم شدن و در قوقای بی حاصل زندگی خونشان ریخته شد فریدون اینک تنها دارایش سر سپسر از دست رفته است که در تمامی ساعتهای روز و شبش بر آنها گرگرد چان کرده شد روز برگشت و بخت به برگ کیانی ترانه گذید از سر تاجگاه نهاد بر خود سر انسشا همی هر زمان زار بگیستی به دشواری اندر همیزی استی به نوه درون هر زمانی بزار چنین گفت با نام بر شخیاب و بیدشت و شد روز من از این سه دل افروز دل ازاری چنین کشته در پیچ من به کینه به کام بدن ایش من هم از بدخوی هم بد روی جوانان چنین بد بست فرمان من لاجرم جهان گشت بر خرس برناد شد پر از خون دل و در دروی چنین تا زمان سرام آری خداوند بر جان درد مند فریدون رحمت می آورد و به زندگی پر از فراز و نشیب یکی از بزرگترین پادشاهان باستانی ایران پایان میدهد منوچهر منوچه سویوار تاج پادشاهی را از سربر زمین میگذارد و برای فریدون نیای بزرگ خود دخمه آرامگاهی برپا می کند ایران سود بار می شود فریدون بشد نام از اومان باز برآمد بر این روزگاری دراز همه نیکنامی بود و راستی که کرد ای پسر سود از کاستی من او چهر بنها تاج کیان به به زنار خونین میان و آیین شاهان یکی دخمه کرد چه از ذر سرخ و چه از لاجه بر نهادند درش تخت آج بیاویختند دست بر آج تاج به پدرود کردند رفتند پیش چنان چون بود رسم و آین و کیش در دخم بستند بر شهر یار شدان من دست از جهان خار و زاد. مانوچه یک هفته با درد بود دو چشمش پر از آب و رخ بود سپاهش همه کرد جام سیاه نوان گشت شاه و قریبان سپاه بانگ و و ابرتاموز آمیخته به خشم و اندوه حکیم توس فردوسی بزرگ از برای قرون گذشته در پخنه کوه و دشت و آسمان گسترده ایران تنین اندازه است جهان آسراسر خصوصی و بار تو نیست مرد خردمن بکردار های تو چون بنگرم و است و بازی نماید برم یکا یک همید پروریشان به ناز چه کوتاه عمر و چه عمر دراز چم داده را باز خوابی ستت چه هم گرب و چون گرب و, اگر و اگر شخیاری زیر دست چاست و جهان این نفس را گسه حمد درد و خوشی تو شاد چو خواب جاودان ماندن دل اثراتت هر نقط آن عز نیکوی یادگار بماند اگر قند یا